امامان دیگه فرمودن ما بقیت لایم. اما چرا نام امام زمانه الان میخوام عرض کنم چطور اجازه بدید شاهد براتون بیارم بهار جلد ده صفحه 152 تا صفحه 154 مرحوم علامه مجلسی از خرائج راوندی صفحه 197 سه صفحه این قضیه ای که الان میخوام بگم نقل میکنه من یه تیکش رو میگم در کتاب کافی با اون سندش باب مولد امام باغر علیه السلام این قضیه نقل شده در جلد چهل و شیش مجددن از قصص الانبیا صفحه سی این قضیه رو نقل میکنه امام صادق فرمودن پدرم مسن بودن و پیرمرد. مرد هشام بن عبدالملک ظالم خونخار از بغداد فرستاد من و پدرم رو احزار کرد برد برای بغداد جسارت به ما کرد اذیت کرد چه کرد بعد قرار شد که ما رو برگردونه از طریق شام ما برمیگشتیم گشتیم می اومدیم مدینه در بین راه معمورین و فرستاده بود و هر یک از شهرها به مردم گفته بودن این دو نفری که دارن میان اینا نعوذ بالله زندیغن، کافرن، اینا اصلا منکر خدا راشون ندید پذیرایی نکنید. شهرها به ما توهین میکردن تا رسیدیم به شهر مدیان. همون شهری که این بقییت الله لکم لکومن کن و مؤمنین آیه 86 سوره هوده. آیه 85 و 84 هودو بعد بخونید درجه به این قضیه است. مدیان شهر شعیب بود. شعیب پیغمبر گرفتار شد به دست مردم مدین مرتب به اینها میگفت مردم شما خدا رو فرمان ببرید پیغمبر خدا رو بپذیرید من از طرف خدا اومدم دارم به شما میگم مردم گوش نمیکردن اذیتش میکردن امام صادق فرمودن من با پدرم امام باغر به دروازه شهر مدین که رسیدیم دروازه رو به سوی ما بستن سران یهود هم گفتن اینا زندیغن راش ندید میگه پدرم پیرمرد بود جستشم نسبتا امام باقر در بین ائمه معروف یه مقداری سمین بودن خسته شده بودن در ظاهر قضیه دل پدرم به درد آمد اومد یه بلندی مشرف بر شهر مدین ایستاد این سعایه رو بلند خوندن س آیه 84 ای و 86 سوره هود که شعیب از مردم مدین گله کرده بود که آیه 86 وقییت الله خیرلکم ان کنتم مؤمنین امام صادق فرمودند مدرک بالا خوندم تا به اینجا رسیدن ثم رفع سوته و قال پدرم امام باغر به اینجا که رسی صداشو بالا برد رفع از او با صدای بلند قال والله انا بقیت الله به خدا قسم بقیت الله منم پس امام باغر قسم کردن من بقیت الله هم دو بهار جلد بیست صفحه دویست دوازده امام کازم علیه السلام وقتی امام رضا علیه السلام به دنیا اومدن قنداغشو دادن به مادرشون جناب نجمه اعتاهو و قال خزیه فا انهو بقیت الله عزوجل فی عرضه به مادر امام رضا فرمود بگی بچه رو به خدا قسم، او بقیت الله است در عرض الهی پس به امام رضا علیه السلام هم امام کازم فرمودن بقیت الله پس بقیت اللهی که امام باغر می فرمان انا بقیت الله امام کازم راجب امام رضا فرمودن بقیت الله لقب خاص امام عصر علیه السلامم شده راجب امام زمان علیه السلام حالا دوتا حدیش بخونم بعد جمبندی کنم شما در دعای ندبه و زیارت امام عصر عباراتی به این مزامین السلام که یا بقیت الله فی بلاده السلام علیکم يا بقية الله في عرضه اي نبقيه الله التي لا تخلو من الاترة الهاديا السلام علیکم يا بقية الله من من الصفة المنتجبين و هكذا بل كه روشن تر براتون ارسكنم اكمال الدين مرهم الشيخ مينوي امام با فرمودند فرمودن اول ما ينتقو بهي لقب خاص اذرات هي نه خرج هاذه الآيه بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ثم يقول اول ما ينطق حين خرج موقعی که امام علیه السلام در خروج میکنن قیام می فرماین. اول حرفی که میزنن زنن حاضر آیه. این آیه است. این آیه رو می خونن الله خیر لکم این کنتم مؤمنین ثم یغول سپس ادامه می دهن. انا الله و و خلیفته علیکم فلا یسلم علیح مسلمون الا قال السلام عليك یا بقیت الله فی ارزه حضرت بعد از اینکه این آیه رو خوندن بعد فرمودن من بقیت الله هم من حجت الله هم من خلیفت خدا هم کسی سلام به حضرت نمی کند مگر این که اینجوری السلام علیکه یا بقیت الله فی ارزه اصلا آقا رو با این نام صدا می خب حالا جمع بحث در قسمت بقیت الله چه می شود؟ هر جلوه ای از جلوات پروردگار ارزش خودش داره جلوه خلقت یک شاخه گل به اندازه تجلی گل بودن عظمت خدا رو نشون میده جلوه یک عالم ربانی آیا تجلی از جلوات علم مطلق الهی هست یا نه خورشید میتابه شعایی از نور خورشید وقتی وارد خانه ای شود؟ به اندازه ای که از اون شعاع خورشید در مسل مناقشه نیست میگم قیاس نکنید. به اندازه ای که جلوه نور خورشید داخل یک فضا شده است تجلی اون خورشید است یا نه. حالا گل جلوه خلاقیت خدا رو به اندازه گل میده، عالم جلوه تجلی خدا رو به اندازه علم خودش میده. بقیۃ الله یعنی هر چه جلوه از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت بناس از طرف پروردگار آدم به عالم وجود تجلی کند او میشه بقیۃ الله از خودم گفتم یا آیه میگه از خودم گفتم یا روایت میگه حالا اگر بخوایم معنای تجلی تام و بقیه یعنی هر چه از ابتدا بنا بود بیاد بیاد بیاد هنوز باقی مونده هنوز باقی مونده هنوز باقی مونده 14 معصوم كلهم نورون واحدن همشون بقیه الله اما لقب خاص امام زمان بقیه الله چرا چون یک تجلی اعظم الهی در این عالم ادالت تا است یا نه کدوم یک از معصومین این تجلی رو در عالم ایجاد کردن نه اینکه اونا سستی کردن نعوذ بالله عملا نشد اونی که باقی مونده است مثلا در خود رسالت مگر بنا نیست این تجلی صورت بگیرد ها ولزی ارسله رسولهو بالعدام و دین الحق لیوزهرهو الاددین کلیه ولوکره المشرکون لذا چرا این آیه رو تفسیر کردن؟ به امام زمان علیه السلام برای اینکه تجلی رسالت الهی را به صورت کله که بر همه عالم فرا بگیرد جز با بقیت الله می شود هنوز باقی مونده اون قدرت هایی که بناس از طرف خدا اون کسی که با خدا در ارتباط است جلبه گری کند پس میشه شه بقیت الله